ای دست و آخر گل و یاران در انتظار ساقی به روی شاه ببین ما و می بیار. دل برگرفته بودم از ایام گل ولی کاری بکرد حمت پاکان روزدار. دل در جهان مبند مستی سوال کن از فیض جام و قصه جمشید کامگار. جز نقد جان به دست ندارم شراب کوکان نیز بر کرشمه ساخی کنم نسار خوش دولتیست خرم و خوش خسروی کرین یارم ز چشم زخم زمانش نگاه دار می خر به شعر بنده که زیوی دگر دهد جام مرسع تو بدین دین در شاه و اگر فوت شد سحور چه نقصان صبوح است از می کنند روز گشا طالبان یار زنجا که پرده پوشی عف کریم توست بر قلب ما ببخش که نغویست کم ایار ترسم که روز هش انان بر انان ربت تسبیح شیخ خرقه رند شراب خواه. حافظ چون رفت روزه و گل نیز می روید ناچار باده نوش که از دست رفت که